حالا درود شریف فضل خیلی زیاد داره و مختصرم بگم و این است که خود درود و صلوات فرستادن به نبی کریم صلی الله علیه و الصلاح خوبی خوبی‌های زیاد داره از اونها اول بدانید که ذات باری تعالی خودش امر کردیان که درود بخونید در عمر یک بار درود خواندن فرد است در عمر یک بار درود خواندن فرد است که خداوند متعال داخل سوره احزاب امر کرده درود بخوانید در نمازها این به اصلاح سنت معقده هست در نازی امان شعافی فرض هست و بعد این است که آیت در, در جلسی که نشستیم بار بار نام نوی کریم یا بار بار بگیم یک بار گفتی ادام میشه بار بار گفتنی مصطحب هست واجب نمیشه درود شریف یا صلافات فرستادن فضایل وستیار بزرگی داره اول این است که با هر بار با هر بار درود خواندن یک گناه کفار میشه به به بخوان درود بخون گناه کفاری میشه دو یک درجه میری بالاتر و یک نیکی به شما میرسه و ده دا حدیث داریم که یک بار بخونید خدا ده نیکی به شما مراتر میکنه من صلی علی, علی عشر مرات کسی یه درو برای من خود خدا ده تا درو برای اون ده تا رحمت بر اون نازل میکنه پس این که نبی کریم فرمودن که شما عبدخانی گناه بخشیده میشه قطعی اموا یک درود بخوان قطعا یه گناه بخشیده میشه دیگه چی درجات میرم بالا بعد از ذون که حدد این هم که ده نیکی میرسه و بس خوبیشی هست خوبی درود این که کسانی که زیاد درود میخوانا پیغمبر نیاز داره؟ این درود ما. پیغمبر نیاز نداره؟ ما نیاز داریم این درود نیاز ما رو برطرف میکنه نیاز ما این است که کسانی که زیاد درود میخوانا قرب نبی کریم حاصل میشه ما نزدیکتر میشن. و اونجا وقتی که نزدیک‌تر شده شفاعت نبی کریم اونها رو شامل میشه شفاعت می‌نستن شفاعت چیز بسیار مهمی که همین انسان‌ها محتاجن اونجا شفاعت می‌شدن وقتی نبی کریم شفاعت کنه ان شاء الله شفاعت هم رد نمیشه تفاعده بعدی چون نبی کریم محسن هست و الله رب العالمین فرمودن که رحمته للعالمین اون رو چون رحمت برای جهانیان هست و احسان کرده وظیفه ما چی شکر نعمت شکر و درجات نبی کریم والا پس ضرورت به دارای داره فضلی ویسی